خیلی ها خوشحال و مسرور استم که به تعبیر واقعی در میدان های گرم نبرد و کارزار علیه همه کفار و, و مرتدین زیر سایه خلافت زندگی به سر و قرار است که در این روزهای نزدیک مرتدین غلام اجیر و قراردادی رژیم فاسد افغانستان نبرد و پیکار را علیه مجاهدین دولت اسلامی برا بیندازند. اما اینها نمیدانند که ما پسران کسان هستیم که امپراتوری فارس و روم را الله تعالی توسطشان شکست داد و اینها خیلی ها کوچکند. از ربم استدعا می کنم و پیام دارم برای همه مجاهدین دولت اسلامی در خراسان زمین تا ترس و حراس را در وجود خود جا ندهند و ثبات استقامت و پایداری را هم از دست ندهمد چون ما شاء الله کامیاب استیم و دارای فکر و استقلال فکری استیم و مهمتر اینکه رب ما وعده پیروزی را داده است و لن رب وماست رب وماست سنضرب الرصاص وجاء القصاص الخيل جالت وشالت وصالات لهذا استحالت لحظات خبری سوي خلافات گزارش های جانبه از فعالیت‌ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری صدای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر دارد. لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و بركاته. شناختگان عزیز رادیو صدای خلافات با امیدی سهتمانی و سلامتی تان می پردازیم با آخرین تحولات و پیشرفت های دولت اسلامی. نخوز سرخه چند خبر. کشته شدن سی اسکاری جدید شمول در یمن. الو بیش از 50 نیروی عراقی در درگیری های فلوجه صالیل الصوارم صالیل الصوارم و کشته و زخمی شدن حدود 400 نصیری در ولایت ساحلی سوریه صليل و این هم تفصیلی خبرها یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی با استفاده از کمربند انفجاری بر مرکز استخدام نیروهای دشمن در منطقه خورمکسر واقع در وسط عدن حمله کرد که در نتیجه سی سرباز جدید شمور دشمن کشته شدند خبرها از شدت درگیری ها در فلوجه حکایت می کند. در تازه ترین موارد یک تن از استشادیانی دولت اسلامی کاروان نیروهای دشمن را در منطقه المعامل در شرق فلوجه آماج قرار داد که در نتیجه یک تانک و یک اراده بولدوزر دشمن از بین رفته و شانزده اسکر در آن کشته شدند در همین حال در یک خبر دیگر آمده است که مجاهدین دولت اسلامی با مشک هدایت شونده یک تانک نوی آبرامیس و دو بولدوزر نیروهای عراقی را در شرق و شمال فلوجه از بردند در یک خبر دیگر آمده است که تن از نیروهای عراقی در جنوب فلوجه کشته و زخمی شدند این نیروها زمان تلفات دیدند که آنها خواهان ورود به منطقه نعیمیه شده بودند نیروهای بسیج رافیزی با همکاری اساکر ایران مناطق اهل سنت را در فلوجه به توب خانه می بندند درگیری در فلوجه در حال شدت می که نیروهای دشمن از اجرای عملیات بر این شهر خبر داده بود همچنان جنگنده های مسجد اررقیب را در منطقه جولان شهر فلوجه بمباران نمود که در نتیجه مسجد مذکور به طور کل نابود شد نیروهای دولت اسلامی یک سلسله حملاتی را بر دو شهر ساحلی ترتوس و جبللا که از مهمترین پایگاه های نظامی سوری و شب بنزامیان شیعه باشد انجام دادند. گفته می شود که نخوص پنج حمله کننده استشادی وارد شهری ترطوس و پنج دنی دیگر وارد شهری جبله شدند. دو حمله کننده استشادی هایشان را بر این دو شهر انفجار دادند. سپس استشادیان دیگر کمربانهای انفجاریشان را در مناطق مختلف بر نیروهای دولتی و شیب نظامیان انفجار دادند. این حملات در این دو شهر حدود 400 کشته و زخمی به جا گذاشت. یک منبع خلافت به خبرگزاری عماق گفته است که این حمله جواب حملات هوایی سوریه و روسیه بوده است. گفته شده است که این حمله در مناطق ساحل سوریه بی سابقه بوده است. یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی موتر بمگزاری شده خود را بر وسط نیروهای عراقی در منطقه بوشجیل واقعی در شمال غربی فلوجه انفجار داد که منجر به کشته شدن 16 اسکر اراقی گردید. شنوندگانی عزیز این بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی صلیل الصواری. صلیل الصواری. رادیو صدای خلافات، رادیو صدای حق، نواده ایفم، <تصفيق> <متصف> <متصف> من تو من آ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنونده های رادیو صدای خلافت شما را به برنامه منهج تا منحج خوش آمدید میگم استاد معزز در مبحث پیشین گفت شنو و شنونده های نسبت به مسئله که کمیونزم کرد ولی بحث نتکمیل ماند. خب استاد پیش از این که وارد بحث شوید در خلال برنامه از استخدام مجاهدین غیر فکری در نابود ساختن مسلک و نظام کمونیسم در افغانستان هم گفتید مشکم کمی وضاحت در این مساله برای شنونده ها ارائه دهید الحمدلله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي اما در مبحث گذشته مرور مختصر به قدر توان و استطاعت خود نسبت به مکتب و, و شیوه نظام و نظامداری کمونیسم و فرقش با نظام سرمایه‌داری گفت شنودهای های خود را تقدیم شنوندگان کردیم یک مسئله را پیش از اینکه با سوال شما پاسخ بگویم میخوایم واضی بسوازم که یعنی کفار کلن در بین هم اختلاف دارن در واتیکان یهودی ها در یک کتاب مطالعه کرده بودم که یک قتل عام ایساوی ها را مرتکب شده بودن ولی قضیه وقتی که متوجه مسلمان و سرکوب کردن مسلمان میشد، باز همین یهودی ها همین نصرانی ها همین قضیه را به یک بخشش برای یهودی ها معاف میکنه و یا دشمن متفق در مقابل اسلام چی میشن استاده میشن آلی دو مسلک هم اون جانب شما کفار است و این جانب شما کفار است فرقش بر ما هیچ نیست و کفر یک ملت واحد است خب از یوقات وقتی که مسئله اسلام مطره نمی به خاطر زدن و به خاطر ریشکن ساختن باز اینها در بین خود هم اختلافات خود می داشته باشد و اینمی مسلک در تقابل و در مقابله در طول تاریخ به یک اصل یعنی به عنوان یک اصل اختلاف در بین از اینها بوده این که امروز مسئله زنان اسلام پیش شده اینا متفکر شدن در کل در افغانستان ما مشاهده کردیم که وقتی که روزها در تاریخ نقل قول می کنن, که وقتی که روزها متوجه شد که افغانستان یعنی یک ساهی فارغ بخاطر کشمکش های سیاسی است و حراس این را هم داشتند که مبادان رژیم فاسد کفری آخاندی در افغانستان لشکرکشی نکنه و تحت تاثیر خود و تحت نفوس خود افغانستان قرار نته در بالای افغانستان هم چی کرد؟ اقدام کرد و نهایت این هم اقدام همان نظام کمونیستی و نظام کوفری و لهادیره میخواستند که تطبیق کنند و دورتر از افغانستان امریکا واقعی بود که نظام سرمایه داری را میخواست و چون در یکی از احساسهایی که در یکی از رادیوها شنیدم امریکا در جنگ علیه تروریسم زعم آنها و بازعم ما،, ما مسلمانان جنگی که بر علیه مسلمانان برا اندق تقریباً در دو تا دو از دو هزار دو به تا دو هزار و چارده تقریباً دو هزار میلیارد دلار با خرچ رسان تا لانهای ترورزمه به تعبیر از اینها چی در خاک افغانستان و پاکستان هدف قرار بدن و آن وقت در مقابل افغانستان در مقابل امریکایی ها روس ها واقع بودن و روس،, روس یک قدرت استخباراتی و یک قدرت نظامی و یک قدرت فکری در دایره فکر خود بود و زدن روس در افغانستان و تشکیل علیه روس امون سیاسی و قوانین کفری که در جهان حاکم است و روی پیش میرن ایجاب نمیکرد که ان در یک کشور یک قدرتمند یا یک عبر قدرت داخل شده دیگه عبر قدرت از اون چند هزار مایل دورتر تشکیل کنه چی چون میخواست که نظام کمیونزم اضافتر رشد نکنه و در امو نفس افغانستان که مرکز شرق است خونسا شوه و یک تعداد مردم در افغانستان بودن که اونها جهاد و قتال یعنی به شکل چریکی علیه روزها شروع کرده بود وقتی که متوجه شدم نهایت عمر همین مجاهدین بی فکر و بی برنامه و بی مقصدن. الا ماشاءالله یک چند قید اخلاقی بالای این روند پیشین جهاد می لگانیم تا محخوض مجرم قرار نگیریم در نزد الله سبحانه وتعالی اینها چی کردن؟ برای اینها برنامه طرح کرد تا دشمن دودست خوده توسط امین مجاهدین در افغانستان چی کنه؟ نابود بسازمون بود که یک تعداد مردم جمعاری کردن و چون سعودی یک کشور کفریست نزد ما و نزد دولت اسلامی ولی یک کشور معتمد دینیست در نزد همین کفار وقتی که مسائل مربوط به اسلام پیش میشه باز کرزه مرتدی مسائل ارجا ارجام میکنه به سعودی که افغانستان دارالاسلام است یا دارالحرب است دک. و امین مسئله را اف... چون امریکا افغان افغانها را درک کرده بود و مطالعه امیق نسبت به افغانها داشت که افغانها نسبت به کشور سعودی به عنوان یک کشور دینی نظر می افغاند. و کشور سعودی یکانه کشور است که اگر از این آدرست جهاد نفیر عام شوه و به عنوان یک یک قضیه عام شوه و مطرح شوه جهاد بر علی روس اعلان شوه این مردم زودتر میپذیرد و واکنش و اساسیت نسبت به قوشون سرخ یا نظامی های روسی نشان ممن بود که امیر رهبرا را جمع کرد و در نفس سودی کانفرانس شد و یک تعداد علما و یک چند آیت و چند احادیث در رابطه به فرضیت جهاد گرفتن نهایت مجلس <تصفيق> یعنی فتوا صادر شد که در افغانستان علی روس ها جهاد فرز عین است خود در نفس امی مجلس کسی نبود که جهاد در نفس سعودی چه قسمت چون مردم بی فکر بود و امین بود که جهاد شروع شد لورل کورنا یک مورخ است تاریخ ملل جهان یک یک سفر است که تاریخ افغانستان به یک انسان غیر جانبدار چی کردن نشته کرد او میگه میگه در جهاد که در افغانستان روی دو انگیزه شروع شد در اول یکی به انگیزی میلی چون افغان ها همه در مقابل اجنبیها ها جنگ کردن پیش از اسلام اینا در برابر چند امپراتوری استاد شدن و جنگ های خود داشتن ولی بی نتیجه. و بعد از او جنگ روی مذهب و که انگیزی از انگیزه مذهب و دین و این آیه قرآن کریم کتب علیکم القتال و کره لكم یک تعداد وادار به این ساخت تا در برابر روس ها چی شود چی شند ولی بعدا میگه در جنگ افغانستان علای روس ها چون هدف امریکا هدف زدن روس در نفس افغانستان بود و ابزار مجاهدین به فکر افغانستان بود و کسی که پول میداد امریکا بود و نهایت امر همین شد که در افغانستان نفس روس نابود شد و نابود شدن روس ها در افغانستان باعث نابود شدنش در تمام جهان شد و امریکا از همین مجاهدین فکری به نفع خود به ابزار و اسباب استفاده کرد و نفس روس در افغانستان نابود سا سوال جواب مربوط سوال بود که شما کردید حالا میایم که بحث خود تکمیل میکنیم که بعض موضوعات دیگری در پیوان به کمیونزم وجود داره که در مبحث پیشین ما نتا را ادا کنیم بحث ما تا اینجا رسیده بود که اینا گفتن در افکار اینها به سه چیز ایمان و سه چیز کفر بود و سه چیز که کفر بود او الله و دین و مالکیت فردی بود و مسئله دیگری که وضاحت دادیم که تاریخ اینها در مقابل طبقات تفسیر میکنن و میگن که همین یک قشر قدرتمند همیش از یک قشر ضعیف و فقیر استفاده چی کرده؟ سو و استفاده و بهرکشی کرده و اینمی مردم فقیر و مظلوم وقتی که از حق خود دادخوایی در برابر همین مردم قدرتمند و خان و ثروتمند کرده در, در بین اینمی کشمکش، در بین اینها کشمکش ایجاد شده و اینمی کشمکش بوده که بار بار تکرار شده و بار بار این فاجعه در بین بشریت بوده و تاریخ اینا تفسیر طبقاتی میکن. و نظر اینها در پیوان به دین و دینداری هم این است که اینها میگن که دین یک وسیله از وسائلی است که انسان ها را در دام مندازه مم. یعنی دین یک مفکوره و یک تصور است که انسان ایجاد کرده او به خاطر این که از مردم مظلوم و, و فقیر چی کنه بهرمندی مادی کنه در حال که نظر اینها یک نظر پوچ نسبت به دین و دینداری است اما تصور را, را که اینها نسبت به یهودیت تحریف شده و ایساویت تعریف شده و مکتب تفتش حقایق در گذشته در اروپا داشت او را سر اسلام هم. حمل کرد در وال که اسلام خاطر این آمده تا حق مظلوم گرفته شوه و ظالم جلوش گرفته شوه که ظلم خوده نکنه هر چیز از خود محدوده داره در هر مسئله چند قید اخلاقی لگانده شده تا انسان الله سبحانه وتعالی در یکی از آیات می فرماید که بالله من الشیطان الرجیم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون یعنی حدود معین و مشخص الله سبحانه و در پیوان به زندگی در کلیات جزیات بر انسان و آکم و معمور و رایه تعیین کرده ولی وقتی که یک انسان از مو حدود تجاوز میکنه با الله سبحانه و تعالی ایر خطاب میکنه یعنی یک جرم نابخشدنی و یک جرم که در آخرت این انسان چی میشه ماخزه میشود و مسئله بسیار خطرناک دیگه این است که ارتباط اخلاقی و خانوادگی را سبب رشد مسلک سرمایه داری میپندارم و میگن که بجایش روابط جنسی چی شوه؟ جایگزین شوه یعنی ما این را به عنوان یک اصل دیدیم در افغانستان هم دیدیم که یک تعداد کمونست هایی که فکری کمونیست بودند. و در امین حزب خلق و پرچم و شولهی و ستمی بودن بر علاوی, بر علاوی مال و جایداد که اینا مال و جایداد مشترک می دانستند بر اساسی نمی اصل که در ساختار فکر کمیونیزم مطرح شده و یک بخش اعظم از مسائل مربوط به حضب در امین مسئله ترکیز میکند که روابط محدوده های اخلاقی بین محرم و نمحرم باید حفظ نشد بلکه سبب رشد نظام سرمایده باید در جایزی اختلاط جنسی شد ما دیدیم ما مشاهده کنیم یعنی شواهد مستند ما دیدیم که یک اکثر خلقی ها و پرچمی ها برالاوی از این که یک قرارداد اخلاقی به زعم خودشان بین زن و شوهر وجود داشت ولی زنهای اینها این بدبختار میدین که با رفقای حزبی در دیگر نواحی من حیث مال مشترک هم ارزای غرایز میکردن و در کل آخرین دو مسئله دیگری که در این حزب به عنوان مسائل بسار خطرناک ذکر میشه که اینها کلا به نف دین رای میدهند و بیشتر انتقاد میکنن جرح میکنن و به نحوی از آنها دین‌دونی را دین و دینداری را منفی بر مردم معرفی میکنن ولی نسبت به با یهود باز اینا استثناء قلم میشه که مخالفت با یهود مخالفت با یک نژاد برتر مینا و در در در کل چون رهبران این مسلکها بیشترشان یهودی است آنها میگن که مذهب یهود یک مذهب مظلوم و یک مذهب است که سر زیاتی شده و مذهب یهوده چی میکنن امین است که نسبت به مارکس میآید که مارکس حاخام یهودی نواسی یکی از حاخام های ها. آخان در فرهنگ دی خدا به پیشوا و مقتدای یعنی مذهب و مسلک یهودیت چه میشه تفسیر و تعبیر میشه و دو آخرین مسئله که از جز مسائل خطرناک است آن این است که در جهان بینی مادی هم گفتیم که نسبت به انسان تصور همین مکتب و همین مسلک این است که انسان انسان حیات انسان میکروب بوده و حیات انسان به یک میکروب تشبیه میکنه که چندین هزار سال قبل در آبهای گرم یعنی جمع شده بود و مرحله به مرحله ای ترقی کرد که در یکی از مراحل از این میکروب شادی جور شد. و در یکی از مراحل دیگر از این انسان جور شد و بیشتر این نظریه متوجه داروین میشه و این نظریه یکی از خطرناکترین نظریه هست که بر پیپکر دین و دینداری سخت ضربه و این مسلک در شوروی و چین و چکسلواکه و بلغاریه و آلمان و شرق و بعضی کشورهای دیگر هم مورد اجرا قرار گرفته و بیشتر حاله در کشور چین و در کشوری که فیدل کاسترو به عنوان یک حاکم مانده اه کیوبا اه مورد اجرا قرار میگیره ولی در کل نظام سرمایهداری باز هم بالای این نظام چی شد حاکم شد و فیلن نظام سرمایهداری در کشورهای شرقی و غربی مورد اجرا قرار گرفته و شیوهی از نظامداری است که خبیس ها و همین بدبخت این نظام پیش میبرند الله خیر استاد ما مسلمان ها میگیم که الله خالق تمام مخلوقات است و اینها میگویند که تصور خالق وقتی در انسان با وجود آمد که مجبور شد یعنی چه قسم؟ چون در خلال بحث این مسلک کلن نفع الله سبناتلا یا تصور الله رای میدهد و نظرشان در پیوند به همین مسئله این است که مگه وقتی که سر یک تعداد مردم ظلم صورت گرفت و یک تعداد مردمای قدرتمند و زورمند از وجود آنها استفاده کرد به نفع خود نهایت امر همین انسان مجبور شد وقتی ام. که مجبور شد نفس مجبوریت و محرومیت تصور الله و خدا را در اینمی بنده چی کرد؟ ایجاد کرد. ما میگیم که در جهان بینی اسلامی ما گفتیم که جهان دارای خالقی و جهان روی یک برنامه هدفمند برا انداخته شده و این خالق یک خالق مدبر و دانا و توانا و متصرف از بالای جهان ولی در جهان بینی مادی گفتیم که جهان هیچ خالق وجود در جهان به نظر به فرهنگ و فکر اینها وجود نداره ولی در مسلک کمونیسم مشخص گفتیم که اینها نظرشان در پیوند به الله سبحانه وتعالی این است که ما میگیم که خالق مخلوقات را به اساس یک هدف خلق کرده ولی اینها خبیصها میگه که مجبوریت و محرومیت و مظلومیت بود که تصور الله را در ذهن انسان ایجاد کرد اما انسان محروم و مظلوم چون به پایگاه نیاز داشت که خدا تسلی تا با سبب همین ظلم و ستم که بالایش صورت میگیره و این است که میگن که خالق مخلوق با وجود آورد و سببش اینه محرومیت و مجبوریت و مظلومیت میگن و بیشتر بعد از او تصور خالق ایجاد شد باز تصور جنت و دوزخ ایجاد شد خاطر بیشتر تسلیت همان انسان مجبور که وقتی که ظلم سرش میشد باز تصورش به طرف اینمی جنت و دوزق میرفت که ظالم زیادتر متوجه میسا که ظالم روز خواهد رسید که همین ظالم به سبب همین اعتقاد که نسبت به دین و دینداری مدارم در روز جهنم و روز محشر چی میشه؟ محاخظه میشه ولی کلما یکی از معرخین میگن که این مذهب چرا رشد نکرد و چرا بقا نکرد و بیشتر وقت خدا همین ترراهای این مذهب و این مسلک صرف مطالعه و صرف پژوهش و تحقیق کردن ولی باز هم مذهب اینها بقانه نکرد. میگن چون مذهب نبود که موافق سرشت و فطرت انسانی باشه و با اصول انسانی و موازین منطقی و علمی استوار باشه همین بود که بیشتر از 100 سال یا اضافتر یا کمتر در جهان بقای خدا حفظ نکنم او مدت که حفظم کرد ما در مبعثه گذاشته گفتیم که به زور قدرت نظامی یعنی زور باروت و زور اسلحه و آتش آهن بود که بقای این مذهب در نفس بعضی ممالک حفظ کرد الله خیر شنانده های گرامی شما مباحثهی که پیرامون نظام کمیونزم صورت میگیره شما بشنوین که عقاید پوچ مزخرف از اینا در افغانستان و در جهان سرایت کرده این بحث به خاطر عزی است که تمام مردم باید بدانند که نظام کمونیسم یک نظام پوچ و مزخرف و خلاف عقل انسانی است تا تمام شنونده ها بدانند و کسایی که د این معرض کمونیزم مبتلا است باید از این عقیده و نظر توبه کرده و به اسلام رجع کنند چون وقت برنامه ما به پایان رسیده ناگذیر با شما الله حافظی میکنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته طاغوت شيناسي طاغوت شيناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا في انفصام لها والله سميع عليم طاغوت دهقتين دهقتين دول تصنمين یک تاریخ مشهور است که تاغوت او را عبادت کردن می شود دیگران او را عبادت می و او از عبادت دیگران راضی باشد ای را تاغوت می حکومت تاغوت عبادت تاغوت اطاعت و متابعت. و کسی که دعوه میکنه که با الله و تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لیکن قلبان طغوطه دوست داشته باشد یا زبانم این طغوت تعریف میکرد باشد یا حمدان از طغوت اطاعت میکرد باشد یا از جمله‌ی کلمه از جمله‌ی نواقض ایمان است این برنامه را دوشنبه شب ها و چهارشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید دار جستجوی حق،, حق بیاید که در جستجوی حق شویم و با کسانی راه را بپیماییم که خود و دیگران را به طرفی جنت سرامی خوانند شخصا قبلا بسیار احساس زلط میکدم الحمدلله بازم امیرادیو خلافت اسلامی که فعال شد در طریق انترنت بازم تلاش کردم ایرا پیدا کردم خیلی حقایق برم معلوم شد بعد از این اقدام کردم که از دهت نظام کفری به تحت نظام اسلام بیایم اینها ها کسان هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند خواسته الله بود که ما پشت کردیم گشتیم با استازه با جاهای مختلف هاش ناشتیم و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و برای آخره به توفیق الله تعالی ما به رسیدیم این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمع از رادیو صدای خلافت